اول نخستین عشق نویسنده ایوان تورگنیف راویان ارسلان جولایی نسا جابر ابن انساری تهیه کننده ویدا بابالو اقتباس شنیداری مریم بزرفشان محشید دشتی صدا بردار حسین قاسمی تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا نیمه های شب مهمونی تموم شد مهمون همه به جز سرگی نیکلایچ و ولادیمیر پتروویچ رفتن صاحبخونه روی صندلی رو روی مهموناش نشست لبخندی زد و گفت خب سرمون خلوت شد صاحبخونه پاشو روی پای دیگرش انداخت و گفت قرار بود هر کدوم از ما داستان اولین عشقش تعریف کنه سرگی نیکلایچ از شما شروع میکنیم سرگ سر چرخوند به خدمت کارایی که میز شام و تمیز می کردن نگاه کرد. نگاهش روی حلقه های دود توتون صاحب قفل شد. با صدایی که از ته گلوی چاق و باد کردش بیرون میومد گفت. عشق اول من گفتن نیست. وقتی شش سالم بود عاشق دایم شدم. جزئیاتش یادم نیست اما میدونم خیلی دوستش داشتم. یادآوری عشق پسر بچه شش ساله جذابیتی نداره. میزبان سر تکون داد و لبخندی روی لبش نشست منم چیزی برای گفتن ندارم اولین عشق من همسرمه پدرم اون ما رو به هم معرفی کردن خیلی زود آشق هم شدیم و بلا فاصله ازدواج کردیم الانم زندگی خوبی داریم نوبت ولادیمیر پتروویچ بود مرد دستشو میون موهای مشکی که تک و توب سفید داشت سرش سرشو پایین انداخت با انگشت خطوط نامشخصی روی میز کشید انگار کلماتو توی ذهنش پس و پیش میکرد بالاخره گفت داستان عشق من کمی عجیبه بقیه خندیدن گفتن چه بهتر؟ ولادمیر پتروویچ لبخندی زد و گفت اجازه بدید داستانمو امشب حکایت نکنم برای اینکه چیزی یادم نره داستانمو و یادداشت میکنم بعد براتون میخونم قرار شد دو هفته بعد؟ باز دور هم جمع بشن تا قصه نخستین عشق ولادیمیر پتروویچو رو روز معود رسید پتروویچ داستان پرهایجان نخستین عشقش رو برای دوستانش خوند تابستان سال 1833 بود 16 ساله بودم تازه به خونه ی ایلاقیمون که روبروی باغ سرسبز و بزرگی بود رفته بودیم تنها فرزند خونواده بودم قصدم رفتن به دانشگاه بود اما زیاد درس نمیخوندم اون روزا آزاد آزاد بودم پدر و مادرم کاری با من نداشتند. حتی وقتی معلم فرانسویم رو جواب کردم، پدرم مخالفتی نکرد. مادر ده سالی از پدرم بزرگتر بود. شاید همین مسئله اونو حساس و غمگین کرده بود. مادرم مدام دلشوره داشت. برخلاف مادر، پدرم خونسرد و آروم بود. اون از خود راضی ترین آدمی بود که توی عمرم دیدم. روزایی که تازه به یه ایلاق رفته بودیم، روزای خاصی بودن هر روز کتابی زیر بغلم میزدم و راه میافتادم. شهرهای کتاب درسیمو و بلند بلند میخوندم میون درخت قدیمی قدم میزدم بین شاخ و برگاشون دنبال چیز خاصی بودم. خودمم نمیدونستم دقیقا دنبال چییم اما حس میکردم با هر قدم به طرف اتفاق بزرگی پیش میرم حسی گنگ و درونم بود که تا حالا تجربش نکرده بودم بعضی وقتا سوار اسب کوچیکم میشدم و می‌تاختم. ای بودم که به دل دشت میزد با باد مسابقه میدادم. گاهی هم می سدم تا به زمزمه نسیم گوش بدم. با این همه عشق شکل مشخصی توی ذهنم نداشت. هرچند لابلای تمام احساساتم حسی شیرین و عاشقانه پنهان بود. عمارت ییلاقی ما خونه اربابی بود با دو بنای کچیکتر در دو طرفش. در ساختمون سمت چپ کارگاه کوچیکی بود که ده دوازده پسر بچه اونجا کار میکردن. کارشون انداختن نقش و نگار رو کاغذای دیواری بود. گاهی به اونجا سر میزدم. پسرها با بدنهای نحیف دستگاه منگنه را فشار میدادن و احرامهای چوبی رو جابجا به جا ساختمون سمت راست خالی بود. مدتها بود کسی خونه رو اجاره نکرده بود. سه هفته بعد از اقامت ما پنجره های خونه باز شدند. ظهر سر میز نهار مادر از پیشخدمت سراغ همسایه جدید و گرفت. نام خونوادگیشون زاسکینتا بود. عنوانشون به شاه ها تعلق داشت اما فقیر بودن. اونقدر فقیر که کالسکه شخصی نداشتند. اساسیه خونشونم چندان تعریفی نداشت. شبایی که بیخوابی به سرم میزد تفنگ ما بر می داشتم و به باغ میرفتم. شکار چراقا تفریح شبونم بود. چراغ. پرنده سیاهی که از نظرم وحشی و فریبکار بود. اونقدر توی کمینشون نشسته بودم که منم میشناختم. تا از دور منو میدیدن سر و دور می شدددن. اون شبم تفنگ بر توی باغ قدم زدم. دنبال کلاغ بودم، پرنده‌ای که همه میگفتند باهوشه، ولی برای من موجوداتی دزد و نفرت انگیز بودن با حواس جمع و چشم و گوش باز به هر گوشه‌ای سرک میکشیدم. به پرچینی رسیدم که حد فاصل باغ و بنای کوچک سمت راستی بود. از اون طرف صداهایی شنیدم. کنچکاف شدم. بالای پرچین رفتم و نگاه کردم. اون طرف دختری بلند بالا در لباسی ارغوانی با روسری سفید توی باخچه ایستاده بود چند نفری کنارش بودن و با هم حرف می زدن دختر گل کوچیکی که اسمشو نمی دونم دستش بود دخترکو نمی نمیشناختم تا حالا ندیده بودمش مبهود نگاهشون میکردم که جوونی فریاد زد کی باید اجازه داده سرک بکشی ها؟ خوشکم زد پشت سرم و نگاه کردم. جوانی خشمگین نگاه می کرد. تو عمق چشماش تنه و تمسخر موج می زد. دختر حیران به من و جوون نگاه کرد. از همون جایی که ایستاده بودم چشمای زاغ درشتشو دیدم. دختره خندید. تفنگم و برداشتم و فرار کردم. به خونه رسیدم. یه راست به اتاقم رفتم. روی تختم افتادم. قلبم مثل قلب گنجشک می تپید. خجارت زده بودم نه تنها از دختر که از خودمم خجالت میکشیدم اما درونم پر از احساسات خوب بود کمی بعد از جا بلند شدم وسط اتاق چرخیدم تو آینه به خودم خندیدم حال عجیبی داشتم حالی که نمیدونستم اسمش چیه روز بعد تا دیر وقت خوابیدم صبح با این فکر که چطور با اون خانواده آشناشم از خواب بیدار شدم. قبل از صبحانه گشتی در حیات زدم. از دور به پنجره های خونه همسایه نگاه کردم. سایه مبهم دختری که از پشت پرده بیرون و نگاه می کرد دیدم. سرم و چرخوندم و دور شدم. تصویر دختری که با تمسخور نگاهم می کرد و می خندید از جلوی چشمام دور نمی شد. با هر قدم، مسمم تر می شدم فکر کردم هر طور شده با اون آشنا میشم به خونه برگشتم مادر تو آشپزخونه پشت میز نشسته بود نامهی روی میز بود نامه ای از همسایه جدید مادر دستش رو روی پیشونیش گذاشت بیحسله نامه رو به من داد نامه بدخط و ناخانه بود شهزاد خانم از مادرم درخواست کمک داشت گفته بود مادر با اشخاص بانفوزی آشناست که به اون و فرزندانش کمک میکنن مادر شونه بالا انداخت نمیدونم چی کار کنم ورق کاغذی برداشت تا یادداشت بنویسه اما املای روسیش زیاد خوب نبود نوشتن نامه به زبون فرانسه هم سلاح نمیدونست پدرم خونه نبود که با اون مشورت کنه وقتی دید کنار میز وایسادم و نامه رو زیر رو میکنم چشماش برق زد و گفت خونه همسایه. بگو مادرم نامتون رو خوند. هر کاری از دستمون بر بیاد براتون انجام میدیم. ساعت یک به بعد تشریف بیارید اینجا تا با هم صحبت کنیم. بهتر از این نمیشد. آرزوم به این زودی برآورده شده بود. به اتاقم دوئیدم تا لباس عوض کنم. حسی مثل ترس دلم چنگ میزد. حس قریبی داشتم. به طرف خونشون رو افتادم. پیرمردی با صورت تیره و موهای سفید برون باز کرد. بدون اینکه حرفی بزنه با اخم سر تا برانداز کرد. بی به من پاشو به در تکیه داد تا بسته نشه. پرسیدم شاستد خانم زسکین تا تشریف دارن؟ من پسر همسایتونم. با دست خونمون رو نشون دادم. پیرمرد مرد سر تکون داد. صدای زنی از ته خونه به گوش رسید. خدمتکار بدون کلمه حرف از جلوی در دور شد و داخل رفت. صدای همون زن رو شنیدم که می پسر همسایه اومده؟ خب بگو بیاد داخل. خدمتکار برگشت. با اشاره سر به داخل دعوتم کرد. دنبالش رفتم. مهمون خونه اتاقی کوچیک و نامرتب بود. داخل اتاق زنی میان سال روی مبلی با دسته شکسته نشسته بود. لباس کهنه سبز رنگی تنش بود و دستمال گردن گلدارش توی زوغ میزد با چشمای ریز سیاهش به هم زل زد نزدیک شدم تعظیم کردم زن لبخند زد گفتم خانم زاکین تا از طرف مادرم خدمت رسیدم زن خدمتکارو صدا زد قبل از اینکه پیرمرد موسفید برسه پیغام مادرمو دادم زن انگشتاشو به لبه مبل کشید سرت کنداد و گفت رأس ساعت به دیدن مادرم میاد بی مقدمه پرسید راستی شما چند سالتونه؟ شونزده سال منتظر جوابم نشد چند تیکه کاغذ از جیبش در آورد و نگاهشون کرد اندام نامتناسبش در لباسی رنگ رو رفته پنهان بود حس می کردم چقدر همه چیز نا همه هنگ و ناموزونه زربهی به در خورد همون دختری که شب گذشته توی باغ دیده بودم وارد اتاق شد زن هیجان زده گفت ای سینوچکا ایشون پسر همسایه بونن. دختر سر برگردوند و لبخندی زد اسممو پرسید گفتم ولادیمیر اسم پدرتون چیه پتروویچ دختر همچنان لبخند به لب نگاهم کرد بعد سرشو به طرف مادر چرخوند و گفت من ایشونو دیده بودم حس میکردم صداش تو تمام رگ و جونم رخنه میکنه. زن با تعجب به دخترش نگاه کرد. دختر گفت دلتون میخواد به هم کمک کنید تا که علف پشمی و باز کنیم. البته اگه کاری ندارید. بعدم بدون اینکه منتظر جوابم بشه راه افتاد. بریم اتاق من. از مهمون خونه بیرون رفت. دنبالش رفتم. اتاق بهتر از اتاق قبلی بود. هرچند. من تو اون لحظه به چیزی غیر از اون توجه نمی کردم. قلبم به شدت می تبید. انگار تو خواب را میرفتم. دختر نشست کلاف پشمی سرخ رنگی برداشت کلاف و دور دستم انداختم اونم پشمارو رو دور مقبایی می پیچید سرم و پایین انداختم تا لبخندی که روی لباش بود و نبینم سنگینی نگاهش روی صورتم حس می کردم. گفت درس می خیلی وقت درسم تموم شده دروغ میگفتم. تازه یک ماه بود معلم فرانسویم رفته بود سرت داد. زیر لب گفت معلوم مرد بزرگی شدی کلافو کشید تا باز کنه همراه با نخ دستمم کشیده شد ابروهاش در هم گره خورد جدیتر از قبل شده بود با دقت نگاش کردم لباس کهنه یه تیره ای پوشیده بود به نظرم صورتش زیباتر از دیشب بود. حس می کردم مدت هاست که می شنزمش. دستم و بی حرکت نگه داشتم. می خواستم بگم عاشقت شدم که صدایی از بیرون اتاق اومد. مادرش بود. و ظروف برات بچه گربه آورده. دختر از جا پرید. گلوله نخ و روی زانوم انداخت و بیرون دوید. از جا بلند شدم. کلاف و گلوله نخ و کنار پنجره گذاشتم و به اتاق مهمون خونه رفتم. جلوی در وایستدم. دختر وسط اتاق روی زمین نشسته بود. بچه گربه‌ای سرش رو به پای اون میزد. کنارش مرد جوان بوری از هنگ سوار سبک اسلاحه ایستاده بود. دختر با صدایی که از شدت حیجان میلرزید گفت. ازتون ممنونم. خیلی بامشتست. یادم اومد. دیشب؟ مرد جوان توی باغ دیده بودم. مرد پاهاشو به هم کوبید. طوری که حلقه های بند شمشیرش صدا داد. گفت شما دیروز گفتید بچه گربه میخواید منم براتون آوردم. حرف شما حکم قانونو داره. باید اجرا بشه. <تصفيق> دختر خندید. به سر بچه گربه دست کشید. بچه گربه سرشو خم کرد تا کف اتاق رو بو کنه. خدمتکار نلوکی به دست وارد شد. نلبکی شیر جلوی گربه گذاشت. گربه زبونشو در ورد و به شیر لیست زد. دختر سرشو خم کرد و با دقت به بچه گربه نگاه کرد. به زبون سرخی که تند و تند بیرون می آورد. کمی بعد گربه سیر شد. سرشو عقب برد. دخترم از جاش بلند شد. کنار مرد جوون وایسد. نگاه تشکرآمیزی به جوون کرد. بعد سرشو برگردوند و به من نگاه کرد. نمیدونستم چیکار چی کار کنم حرف بزنم سکوت کنم یا بخندم سرما که چرخوندم از لای در نیمه باز فئودور خدمتکارمون دیدم مادر رو دنبالم فرستاده بود تازه یادم افتاد یک ساعتی هست منزل همسایه هم رفتم دم در تا خواستم خداحافظی کنم زینوچکا جلو اومد پرسید؟ کجا؟ باید برم خونه بیرون رفتم زینوچکا با صدای بلند گفت هم اینجا بیاید جوابی ندادم با خودم فکر می کردم بازم خونشون میرم یا نه مادر از تأخیرم ناراحت بود بدون هیچ توضیحی به اتاقم رفتم گلوم می سوخت. چشمام خیس شدن و زدم زیر گریه رس ساعت دو شاهزاده خانوم به دیدن مادر اومد. سر شام مادر به پدر گفت از اون خوشش نیومده. به نظرش خانم همسایه زنی فرصت طلب بود که فقط به رو به راه شدن کاراش فکر میکرد. اما با این حال اون و دخترشو برای نهار روز بعد دعوت کرده بود. پدر تعریف کرد شوهر همسایه رو از قبل میشناخته. مرد بی مسئولیتی بوده که تمام رو باخته بود. سالها تو پاریس بود با دختر یک کارمند ازدواج کرده بود هرچند میشد ازدواج بهتری داشته باشه. نگرانی مادر این بود که نکنه همسایه قصد قرض گرفتن داشته باشه. شب دوباره به باغ رفتم، به خودم قول دادم به باغ همسایه نزدیک نشم. اما وقتی به خودم اومدم کنار پرچین وایساده بودم رو که توی باغ قدم میزد نگاه میکردم. کتابی دستش بود و تمام حواسش، مشغول کتاب سرفه کردم تا متوجه حضورم بشه سرشو عقب برگردوند لبخندی زد و دوباره به خوندن ادامه داد همونطور بی حرکت وای سادم. کلاه توی دستم سنگینی میکرد دلم گرفت من جایگاهی تو دل این دختر نداشتم در نظرش فقط پسر بچه بازیگوشی بودم از پشت سر صدای قدم هایی شنیدم پدرم بود که آهسته به طرفم میومد پرسید این دختر همسایه است آروم گفتم آره، امروز صبح که خونهشون رفتم دیدمش پدر قدمهاشو تند کرد به زینوشکا که رسید سلام کرد دختر کتاب و پایین آورد با سر جواب سلام پدرو داد پدر که رد شد زینوشکا رو دیدم که سرشو خم کرد و پدرو نگاه میکنه بهترین فرصت برای حرف زدم بود اما تا خواستم قدم بردارم و نزدیک بشم، زینوچکا کتابشو رو جلوی چشماش گرفت. تمام شب و صبح روز بعد بیحال بودم. تلاش کردم خودم رو سرگرم کنم، اما نشد. خواستم بخوابم، اما خوابم نمی برد. خواستم قدم بزنم، اما دلم نمیخواست قدم از قدم بردارم. کتابی دستم گرفتم تا بخونم، اما کلمات کتاب جلوی چشمم می رخصیدم. قبل از نهار و قبل از اینکه مهمونا برسند لباسما عوض کردم. با موهای مرتب از اتاق بیرون اومدم. نگاه مادر پر از سوال بود. زود گفتم. به خاطر مهمونا لباس عوض کردم. ابروهای مادر در هم گره خورد. چینی به پیشونیش انداخت و پرسید. مهمون؟ کدوم مهمون؟ لازم نیست لباس رسمی تنت باشه. برگشتم به با اتاقم. دوباره لباسمو عوض کردم و لباس راحت پوشیدم نیم ساعت قبل از نهار شاهزاده خانم و دخترش اومدن زن همون لباس دیروز تنش بود کلاه از مد افتاده یم روی سرش گذاشته بود از راه نرسیده حرف بدهی یا و حواله ها رو پیش گشید. از گفتن بدبختی و وضعیت بدی که تو اون گرفتار شده شرمنده نبود زینوچکا کنار مادرش نشست صورتش سرد و بیروح بود شبیه دختری که دیدم نبود سر نهار پدر کنارش نشست و با احترام از اون پذیرایی کرد زینوشکا برخلاف مادرش به زبون فرانسه تسلط داشت روان و بدون اشکال صحبت میکرد بعد از نهار شاهزاده خانم از جاش بلند شد با لحنی که خواهش و تمنا در اون موج میزد گفت من به لطف و حمایت شما امیدوارم پدر لبخندی زد و تا جلوی در بدرقشون کرد منم سر جان وای سدم به زینوچکا نگاه کردم وقتی رفتن وقتی از کنارم رد می شد گفت ساعت هشت بیایید خونه ما تا به خودم به جنبم دور شده بود تا پاشونه از خونه بیرون گذاشتن مادرم گفت زن معدبی نیست پرخوره و سر نهار زیاد حرف می زنه. اما دخترش مقروره معلوم نیست به چین همه مینازه.